ای وای دل که در روز سوزی نیست سودا زدهٔ مهر دلف روزی نیست روزی که تو بی عشق به سرخواهی برد زایعتر از آن روز تو را روزی نیست از باد سبا دلم چو بوی تو گرفت ما را بگذاشت جست تو گرفت اکنون ز منش هیچ نمیآید یاد بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت با نشین که ملک محمودین است و از چنگ شنو که لحنه داوودین است از آمده و رفت دگر یاد مکن حالی خوش باش زان که است ده اقل و زنه رواق و بز هشت، بهشت هفت اخبرم از شش جهتی نامه نوشت کس پنج هواس و چار ارکان و سروح ایزد به دو آلم چطور یک کس نسرشت